یک بار از سنت است نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم می میکرد و حتی گاهی گاهی برای بعضی صحابه نامی می نوشت مستی نامی می فرستاد و تعزیه میکرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برای کسب صحابه را که با کسی وفات کرده بود نامی رو فرستاد تعزیه گفت رفتن پیش خونه اهل میه ضروری نیست اما اگر می بر برابر پشما و حتی تسلی می شود رفتن خوب است این بدعت نیست تون تا از یک گفتن صورت های مختلف بیداره با تلفن، با فرستاده نقاسه یا کمک کردن محلی گاهه هم بکنید و قضا به فرستون ها میشن اینها جائزه ایک از علما میگوید که من داشتم که مثلا بگه که داشت حدیث می نویشت و بچهش همون زمان خود کرد اتفاق به همه حدیث رسیدی که نبی کریم و نوشتر نامی تسلیت گو همه حدیث رسیدی بود فرمونا که همه حدیث برای ما هم تسلیت شده گی که همه حدیث نبی کریم احلا ما خونم نبی که تسلیت گفتمان گفت من شده و تسلیت حاصل کردم پس رفتن خونه هم جایزه کسی گروه تسلیتی بگوید و ان رفتان هم جایزه و از دور ها از دور دور دیگه پیغام بیفرست دارد و وسیله همدردی خودش رو اعلام بکنه این چیز خوبی هست نبی مکرم صلاح به صورت مختلف صحابه کرم و تعذیت می بفتن.